أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا شواء عليه أأنجرتهم أم لمت قتنى الله على قلوبهم و على سنيهم و على أبصاره إشواه و على عذاب عظيم ومن صدقون الله و الذين آمین و ما في قلوبهم فزادهم ان ذا خيل <سؤال> لهم لا تسدوك چرا ایمان نمی آرن زیر ختم الله دلیل العیومیون نیشتی؟ به این خاطر ایمان نمی آران که بر اثر اناد آنها بر قلب آنها مهر کرده شده و بر گوش آنها مهر دل خدا بر دل آنها و بر گوش آنها و بر چشم های آنها فردای معنوی عظیمی است فردای ظاهری نیست فردای بسیار کلفت و معنوی است و ثمرین لهم عذاب قدیم هست این قبلا هم بحث کردیم که الله تعالی دل برای درک داده چشم برای شنید دیدن گوش برای شنیدن وقتی این چشم و گوش را برای حق استعمال حق کسی استعمال نکنند اناد کنند و حق را رد کنند الله تعالی صلاحیت چشم و گوش و دماغ را می و این صلاحیت در اصل علت مال خود آنهاست چون همه چیز به مشیت خدا انجام می و اراده الله تعالی تعبیر می کند همین سلب صلاحیت را از محب از مورد تأییدش میکنه خاتم و از تابع که ما نیست خاتم و تابیکیه تبع الله علیه کلوبیم یا ختم الله علیه کلوبیم این چیم اول زنگهایی که در دل آنها هست و دوبار اناد که آنها میدن او سبب میشود که اینا صلاحیت را از دست بدن این سلم صلاحیت را قرآن عدیم و شان است از ختم و از طبع می کند فرمود که اینا ایمان نمیارند چرا؟ برای ایمان شرط بود که انسان حلد خود را و کشم و گوش خود را متوجه کند اینها باطلان بوقلا تسمون ها دارند و استعفشو سیاب هم جالو اصابه هم فی آذانشین پس اینها چطور؟ و بسیاری یا را فرامی فی القرآن و الله علی اذارهم رضو خدا را در قرآن عطی و شان تنه تنها میکنید این کفار نفرت میکنند و به شما پشت میکنند دنیده این خاطر سلم صلاحیت را الله تعالی از مهر تابیر میکنند این ظلمی نیست که از خدا شده است. کنها خودشان صلاحیت را ایمان نکردن مثل مثال ارز کردن قدرگان ارز کردن که اگر یک دکتر دلسوزی مرس شخصی را تشخیص میده و برایش هم را خیلی الان تشکیش باشد لگه اون مریض مریضیش را تشخیص نمیده و برعبس دکتر را دیوانا و مجنون و کازم و گفتری بگه و آخر این مرد را اصلا در بیاره حالان که اصلاف در آمده حالان نیتوشی دوزم دوزم دوزم دنو بدن تو سالمه دست تو مریض ان دست را علاج کنم بگیرم از قسمت در تمام بدن تو این قسمت بدن تو صلاحیت نداره اس گناه دکتر ازان علیه نصہ توحید را نصہ رسالت را نصہ تقوا را نصہ خدا پرستی را ارضا کردن وانا گفتم وا هیچ مَرَ دینداری نہ کفر نہ عارض کفر با, نا با ما حال نہ عارض شر با ما حال این اوارثی که شما برای ما تشخیص ندید در تشخیص اوارغ ما اوثملثما خژا دی شما ظاهر قای پیغمبر را و دعوت او را رد کردن خب این آرد این آرد کفر و شیر کو تحانت پیغمبر و انکار قیامت صلاحیت بدن انها را دنها گرید وان مرد وقت مرد در حال کفر و شیر اللہ ہیچ سوزی برای آمد بین خاطر اللہ سبحان و تعالی در نبیده سبحان جیز بمشیل بخورا این مهر را و این تبره بخلیش نسوانی این ایمان ننیعران چرا؟ که صلاحیت کار برای از دستا هیم جب ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم خشاوت رو همزم نره جدا کرد گوش از هر طرح مشده دل هم از هر جهت درد می کنه روخ مشخصی برای شنیده گوش نیست از مصابیه هم می از راست، از چهر، از پشت، از بالا، از پایی گوش از هر جهت می شنود هم از هر جهت درد میکنه کنه گوشی که می شنود از پشت این غلب هم از می پشتش نیست گوشی که از جلو میشنوست قلب غلب از همین جلو تشخیص میگه از راست و چه فاکزه از بالا و پاین فاکزه گوش از هر جهت میشنوست او غلب ام از هر جهت درک می کنن اللہ تعبیر از خط میکن که محلت نده بر این حاک از هیچ جهتی علم درک نداره و از هیچ جهتی سما نداره و اندر نوبت به افصال آمد فکت روک و علا افصال از جلو مصابی می بینه چشمی که راست نگام نی کند راست سر و بالای سر و از یک طرف اللہ تعالی گوهت بر افزار اینها قشابه هستی فرده آئی معنیدی اجلو اینها قرار گرفتی کی کو این جدا اون تو زیر بود که صلاحیت کوش اینها از هر جهت صلاحیت دل اینها هم از هر جهت شده دیت. بر اثر و انا خب در دنيا إنها لهم قلوب لا يبقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولا ولهم ولا لهم آيون لا يبصرون بها إجاهم عظيم غالب شروع کرت تلا بس إنسانا نقوش شنواتا ونجيش مدرح باقید چشم دارن چشم ندارن گوش دارن خیلی میتونم بخانم حافظ میتونم بخانم بلکه مولوی چیر دست هم میتونم بخانم فقط گوش دارن چشم ندارن عقل هم دارن بطا انسانا کنه چشم چشم دارن و نه از گوش روشی دارن هرب این قواه دان آج لیکن قوت دراغی انها زیاد قوت ہے آنها آن با این بسیاری چیز گوش هم نمی چنوه لیکن کسی با دست دس اومیر ایم برماتی شکل نگوشو تاریکی نگوش نگوش دست الام سوی کنید در احساس بودی. اللہ میگه دو آگای نا چشم اتنا گوش اتنا زبان اغل بسیار چی دار میده الله تعالی میگه اینها اولین قواه تشخیص اینها از اینها گره تشکیش آنگوش اینها چشم اینها کار ننیتن سید زبان اینها کار ننیتن چون غال اساس مرکز محور مدیر مدبر این دیگران همه نو کرد خدمتدار قلب، گوش، چشم، زبان، فا همه آزای دواره بدن انسان خادم قلبن، قلب چی میخواهد؟ وقتی قلب را الله تعالی محر سده حالا نه دست اوسعی حرکت میکنه، نبار نه چشم نه گوش نه، هیچ چیزی صلاحیت رئیس آزا گرفت شده دعا مبارزه است سلام ترموت که در بدن انسان موضعان، اگر او طالع باشد تمام تسرت طالع است و اگر او فاسد باشد، او تمام بدن فاسدی. این خالق که سلایت را از دست می دهد چیش مسیری کار نمی دست مسیری کار نمی کنه، دست خیانت می چشم خیانت می کنه، دوش خیانت می زبان خیانت می کنه، لب خیانت می کنه، پا خیانت می دست خیانت می کنه، چه خالق بوده ندارد؟ این غالب خراب شده همین ها خیالت می و اگر غالب سالم باشد همین ها ظالم غالب سعی باشد دوش غلط باهم غلط, غلط, غلط خاطر اللہ اولین حالاتی که از غرم شد شروع کرد اذان که این غرم صلاحیت را از دست داده، لحوم لا اذان نمی فهمند، اونها نیم فهمن سر کے صلاحیت شده، انها صلاحیت خود از دست همون زنگ صلاحیت را خدا چون مدیر و مدبر در کتمان کار آهد به خودش نشور داده اینجا از تحصیل دان خدا نیست و در حقیقت این دل صلاحیت را چرا از دست داده وَالْغَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا قَانُونَ یَقْسِبُونَ زنگه هایی بر دل نشسترن اینها صلاحیت را دل اولا انکار میکنند. با هر ایغانت و انکار حق و نافرمانی نقطه سیاهی بلکنی رسا آخر که تمام غلب نقطه سیاه می کنن از دیگر این غلب ایچ غسمت صالیم نورن الله تعالی بین خاطر آخرت آنها می گیر ولهم سمر اخربی آنها را بیان کرد که ولهم اذاب ردیم برای انها عذاب خزیم قامتا است خب بیان استفاعت فریق صالب ظالی من مغزوب علیه هم بود این ظالم ونها خوفارا قدرت شبه شما گفتید اهل مکه انعامت نکردن هدایت نصیب علم نشب اناد کردن فرار کردن از مشعل هدایت دویدن فاطیدن فرار کردن زیاده اونا بین خاطر نزدی که قرآن نامنه هدایت نشده حالا صحیحی این ساعت سآلائی مقدری هستن که خوب ما بسیاری از شاگردان قرآن را دیدهی کسان درس قرآن نشستن با معلم قرآن هم را لیکن قرآن در آنها انغلاب هدایت را نامرده اونا هادی نشده در مکتب مکی بوده در مکتب مدینه بوده سبط نام هم کرده لیکن قرآن در روح انقلاب هدایت را نا آخرده سو میدونه انا از فرار کرده اذا اذکر ترد بکر قرآن ون لعنا ادباره من قرآن کرده لا تسلول هذا القرآن گفتن ناشنیدم ولی بود خب من آنها را آنها در ان انسان های درست درست عبداللہ ابن درست دیگر از جات ابن قيس درست نکرد کلار کلار اینها شاگردان این قرآن بیدن. اللہ سبحانه و جواب وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِينَ قَالُوا إِنَّمَا مَا أَكُمْ مِنَدَى لَعَسَ إِنْجَاءَ اللَّهُ فَالَهُ خُلَسَكَةً كِي درسته انها در قلات قرآن آمدن سبقنا من كردن لیکن حدث آنها برستن هدایت از قرآن نبود بلکن حدث آنها در قلات درس قرآن که دالی قرآن را، خول قرآن را، معلم قرآن را احانت کنن، رنج کنن، ایجاد مشکلات کنن برای خلاس قرآن، برای معلم قرآن، برای شاگردان و متعلمین قرآن انها در کلاس که از هدایتقرآن قرآن مستفید آنها خاطر آمدن، که معلم و متعلم و خلاص قرآن را مختلف قرآن. ال درال خو حتی که آمده برای اختلال و برای فصاد و اون را و متعلمی را میگه احنا خذ ح اینها ارز شیدجیوی را نداره معلم را ستبی، متعلم را سببی هم خلاص را احم مبس را برای گرفتن هدایت نامده. اونا فقط آمدن معلم متعلمین مکتب را به واسطه حساب گیرن و انا ابین معلم را و اون القرآن را منحرف کرده برای انحراف معلمین و متعلمین که اختلاس کرده بودند و نه معلم عظیم و این متعلمین قران مرصد قران بل القرآن كسر که او خود به قرآن مختار بدهد، او خود را به تعلیم معلم اعتقاد به تعلیم معلم داشته باشد، او بدون اعتقاد به تعلیم معلم آمده است، فقط بخاطر خاطر فساد آمده است. که اگر در مغازه و در مكتب قرآن نان خوبی گیر بیاید، امکان شد چند روزی شکم خود را پر و در حقیقت کشف اطلاعات کنید این برائی کشف اطلاعات سابتنام کردازن نه برائی درس و نه برائی اطلاعات که اطلاعات در حوضر انتقال بده حوضر قرآن را و به خاتری نامت قرآن و به هدایت کنید این مثلا را قرآن بعد علای بیان بیان بیان وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ داوای اصلی علی توحید بود درد انسان‌ها هستن که مدعی میشن که آمن به الله ما ایمان به الله آوردی ایمان به الله یعنی ایمان به ما انزل الله امام اور خدا نافل کرده ما همان غضب داره و بالاخره و بالیوم بال... الاخر خصوصا اصل دوم روز آخر این معاده و اون و این معاد و اون مبدأ ایمان بالله آبرده یعنی ایمان بما انزل الله عبر. ایمان به ذات خدا مناد نیست به ذات خدا نفتبود داری ایمان بالله ما نه ایمان بما انزل الله ایمان به حکم الله والیوم الاخر ویزاخر که محال هست ما ایمان کرده و اللہ سبحانه و تعالی تحریف کرد وما هم به مؤمنین یک ذره انها ایمان ندارد چرا این ها اظهار کردن که ما ایمان آوردن به دست محمد صلی اللہ و یوم الاخر لیکن این گفت بلعی تمس خور محلیم دیشت خدا را و کسان را کی ایمان آوردن و در حقیقتنا پری اقنمی دن مگر جان خود را لیکن شغولش را هم ندارن شب ایماریت مستشان مراری درامی که خود مرافظیر و بفار هیچ ایچ در دنیا ان اعتقاد را نا که من خدا را دری پس سوره انما خداوند متعال میگه ی خادمون الله با گفتن امنا بالله والیوم الاخر الله تعالی میگه اینها خدا را فرید میذند الله را فرید میذند حالان کی هیچ مشرک و کافر و هیچ مولودی این اعتقاد را نداست و ندارت کہ خدا را کسی فرید بداد هر کمو سکید بزاد خدا بودر اتخاط فرید خدا را نه داشتی از قرآن چنمی گئی خادرون اللہ اینه تو جواب دار ہے جواب اولینه چینجا یخادرون اللہ مراد یخادرون رسول اللہ اینہ باید حالا من اللہ بللہ و بالیوم و آخر میکا رسول خدا را فریب بیدر فرید رسول خدا فریب اللہ حاسد بسید که نمائنده ای ایران را اگر کسی فریب بگه اون نمائنده ای ایران را فریب داده وہ ایران نام کشوریه لیکن نمائنده ایران را اگر در سا زمان منا فی حانت کنن یا انحانتی ایران سریاست شپیر یہ بادشاہی را کسی احانت کننن احانت و بادشاہ میں سنے شکر درست بی خاطر يخادرون الله ما نكرده يخادرون رسول الله و جمعه كثيرة مفسرين مدافع کرده و باتها مغان كنه يخادرون الله تفسيرش والذين آمروه هست واي والذين آمنوه تفسيريه انها فريد من در خدا رأيان مؤمنون هست رأي. چرا فريد مؤمنين هست خدا فريد خدش مغيه یا رسول و فريد رسول نمائنده مسلم خدا هس. و مؤمنین به واسطه پیغمبر هم نموندهگی دین خدا هستند به خاطر الله تعالی فرمود سری به المؤمنین سری به الله الله ولیو الذين امنو الله ولی مؤمنین دوست و کارساز مؤمنین سری به مؤمن سری به الله بر تفسیری و اون طرف الله تعالی می در حقیقت فریبه نمی داندین مگر خیشتن لیکن شعور را هم ندارند که ما خود را فریب چرا؟ که نتیجه خدا در دنیا فضیحت و در آخرت احبوبت اینها شعور نتیجه را که آخرت به ما عذاب نیرسد این شعور را ندارن تازم صحب شریع و نفی حیوانی قرآن وما گفت وما یعنی که یک حیوان که شعور دار حیوان خواهدشم میشه ناشنید حیوان خدمت که در جلوی و شخص من خدمت و این حیوانت خاملا خدمت و داران خود را می شناسد به هر شکل و به هر نواسی بیان می شناسد این غد خمیش دارد حیوانت اللہ تعالی می فرماید اینها انغادر صلاحیت را از دست دادند بخاطر احادت پیغمبر و مومنی کی نه از شعور حیوانی هم شعور ندارد حیوان ندارد شعور دارد ندارد شعور دارد اللہ تعالی بی مگر اونها نمی دانا کہ اللہ تعالی کشیبان مومنین اللہ ولیوالذین آمنوها یکرج عمر الظلمات ایلن نورها والذین کفر و علیاء همو التاغوتها خود شاین ها را رمی کنان اللہ تعالی من دیر فی قلوبه مرد درد لیتا مرد مرد این مرض در دل آنها غرر دارد پس خدا این مرض آنها را پز داد اللهم برای اینها الله تعالی اضافه کرده مرض را و لهم اذاب الیم و ثمره آخرت آنها اذاب الیم است به مقابل دروغی که در طول تاریخ گفتند به مقابل آن چکه اینها تکذیب کردند دروغ گفتند که آمن نادره آمن نادره کس من ایمان دارن به خاطر این برو همه مستریه هست و جمله کانویت دیون را به معلوم هستن به خاطر تکفیلی که اینها در طول تاریخ کردند، حالا که آمننا بالله و لله و بالآخر بکن در حفظ ایمان نداشتند. خب اینجا اطلاع ای که مرض در دل آنها چی مرضی آیا مرضی پشکی هست غلب آنها مریشه یا مرض مرض معنوی هست بعضی هم نگر این مرض مراد مرض معنوی هست یعنی نفاق، حسد، کینه بغز این چیزها که در دل آنها دوده مرض مرض معنوی کب شر نفاق، حسد، کینه بغز این ها این پیغمبر خدا غنبر الله علیه السلام داشتن الله تعالا فرمود که در دید خبر است. حتی نثریم کرد خدا مرا این را بیشتر کند. جمله دوایی هست بازادهم الله مرا خدا مرا دی را بیشتر. یا جمله خبریه الله تعالا مرا این ها را روزافزون کرد. اینها حساب داشتن با پیغمبر دار. هر روز که پیغمبر یک فتخ و فیروزی و یک پیشرفتی در دین پیدا می کردن خب ترقیه محسود خاصد را خودش باعث می و آخر این حسادت ندیجهش به چی می به او قلبی می چون هر روز محسود به یک پیشرفتی دست می حاصل کیندوز حسد و کینش بزعبه میشه لازه آخر از این حسد که یک مرد درمیه یک مرد غنگیه کورا حاضر کرده کیندوز کرده نتیجهش به مرد ظاہری میرشه که سرایت سراییت خود را دسمیله و آخر پاره میشه خونش کسیب میشه و ازدار میونه کم ظاهری میتونه میشه مرد و هم معنوی میکرده میشه چون مرض حسد و کینه یا مرض کفر و شیر انسان آخر از بین نیبره خطوصا حسد پیخنبر علیه سرسلات پرمود الحسد و کسطدار حسد در دل مثل زنگ بر آهنش است. چطور بی جامع آهن وقت زنگ و افتاد آخر حتی قد قلوب باشد بگیه این حسد همینطور حاکت را میبرند محسود هیچی نمیشه محسود هر ترقی داشت را محصد خودش میسید خلاصه این که اینها عیب خود را خنر میدانند وقتی به آنها می میشود که شما پساد نکنید در زمین آنها در جواب ناسهان میگن جز این نیست که ما این فقط اصلاح کنند کلمه انما برای حسده اینها ناسهین را در جواب ناسهین میگن انما نحن و ما این فقط اصلاح کنند مفهوم این کلام اینه که شما ناسه شما مفسدی ما این اصلاح کنند این ها صلاحیت خود را از دست داردن که نافیین را این ها موسیق نیدن لیکن نده کلمه صحیح که بگن توی موسیق و ها جمله بکار بردن که معنی این جمله اینه که فقط ما در دنیا موسیقی یعنی شما و هم خطان شما و پیغمبرش ما نوز بالله موسیقی وقتی میگیم ما این اس کننده کو نندہ معنی دیگران دے ہی چھ سلاہی نہ دار اس قرانی بیاقین نہ کرتا بلے پھر ناقین کہ اپ کو خود انہاں چکار بیچار کر کہ ناقین نہ رہا کی بودیں این گویندگان چی بودن؟ مفاظر میگن که این ها مهاجرین و انصار صحابه رسول الله مهاجر و انصار دوتائی انصار خانونه که قبلا بطوره دنجیر ایمان دار دن؟ و بعدی ای نگه ناس این ناسین علماء اهلی کتاب بودن که اسلام مشرف شدن دوتن از این کسافت کاری آید که قبلا خلی سرآن با کردیم شما بات بگئی کار می صحابہ صحابہ رمانی کی برای صحابہ مشخص با یهود اکثر منافقین یهودی، عرب شیعی کم منافق اهل احل مکه هیچ زمانی منافقات چرا این منافقات پیدا شدند وقتی دید از که خره اسلام میدان بدر و احد وقتی گرم شد و احزاب بعد از احضا دیگر اونهایی که در مدینه منابرا بودند و اونهایی که حول و حوش بودن بعد از دربه بنو قرزا و بنو ندیر لحظا یهودی که نامی شدن که این محمد در حال مغلوبیت نیش در حال ترکی و غربه هست لذا برای دقاع جان خود و مال خود و وطن خود اینها ها آمنند و ادهار و بالله و بالیوم الاخر کردن سوء إن جاء منا بالله أول رزاق أول رزاقنا بسم الله الرحمن الرحيم آمنا بالله وباليوم باليوم الآخر سبق يرينها و سبق لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله شک دمی کنه. براش که جان خودرا، مال خودرا، وطن خانه کشورنا خودرا افت کنه. و بعد از اینجا جا خلاص می شود. این ها را در دکان کعبه عشرا می دیدند. این ها را در منصیه ادیکا رابطه این ها برکرار بود با تعدمگاران یهود سماوه بکن بابا این دورنگی ها چه؟ در مجلس پیغمبر آمدید آمننا گفتید خال اللهم و دشمنان پیغمبر و حافدین پیغمبر و کسانی که تصمیم جنگ با پیغمبر دارند شما همراو هم کتارید، هم مجلسید در اون که دشمنان پیغمبران قول ما در بنو کلازاو بنو شما در آنها شرکت کرده دیدم میسی این دورنگی فتاده این فتاد آمنا بالله و یوم این و ارتباط مع دشمنان آمنا بالله و باليوم الآخر نشأس وبرخاص مبنزل إدرار شما در یک زر هم نخايد شير بغزاري و هم نخايد إدرار بغزاري إيمان ببنزل شير و قفر ببنزل إدرار شيرنا وإدرارنا در یك زر قرار دادن ما قلت بساطة ليس بساطة ليس فاسد کردنه این آمان ناعش شمالا ارتباط با کفار فاسد میکنه کفاری که حربی هن. صحابه بیده ها میگفتن آنها الله با کلبه ایش کی که انما کلبه هسته در جنیه که ما این اصلاف یعنی تعایز کردن که مصر شمایی در مکه دو دستگی پیدا کردی آمدی در مدینه حالا دو دستگی پیدا کردی پسر را با پسر پسر را با پسر اسلام آمی کنیم همی بین شما و ابو جهل ارتباط برقرار بشه بین شما و ابو صوفیه که در مکه سر دردنی دارند ارتباط برقرار بشه ما در خیل ارتباط را برقرار کردنیم حمین امروز عقله مسلمان خوب نزد بوشکی است که شاگردش در تبوس باشد مرامش در تبوس باشد سر سفره مطالما شراب باشد گوشه خوک باشد رخت تن و مرگ در یک مدرس باشد در یک طالا در یک دانشگاه زن و مرد فقط تل برهشی بلی واسه اون سن این نظام را خدا قبول صحابه این اختلاف بین خوب و ایمان که آنها در ف بودند که منافق و منافقان در همین پش بودند که پیغمبر و صحابه را وعده می کردند که شما باید साजिश کنید جهان ما چون مثاله توبه چون مثال و خدا به پیغمبر گفته بود این خوب خاطر مسئله بدی یا ایو النبی ایت کن الله و نه تو تیل کافرینها و منافقین. حتی کافرها و منافقین را درباره این که شما مقداری کفاره تایید بکنی و کفار شما را حق نداشته ایماد معنیشین نخله و نترک منیافش رو. مومن باید از کافر قتل بیاید. کبر کافر کافرها در دنیا یک شئ اندیشوارگی بکنه اون رو سکوت کنه به قول شبک ابلیس عیسی به دین خود و موسی به دین خود ما این سبق را نداریم ما این سبق را داریم که شما دعوت و تقریر کنید به طرف خدا قم فأنر و ربک فكبر و تیالک ففتح و بعد هم که در صور جهان آمد جهاد معنی ایسی ہے باقومت سازش کرد کن آئین و غوانین قفار را شما باید نابود کنی کافر بی حجابی دی خواهد شما حجاب بگی کافر بی نمازی می خواهد شما نماز کافر خجا بی خواهد شما بگیم نماز کافر خجا بی خواهد شما نماز بگیم هر روز یک خوبی از آقام خدا را اینکا پر حق قرار می زیدن می صلاحیت عمل ندارد این دو رنگیر منافقات آشکار و می خواستات اینها که انها ارتباط پر خرار کنن صحابه این آرگی گفتر اللہ تو سیدو پر آر ان حج مرعت ندارد آشکار که صحابه را بگن کشمائی پرسی گفتر این نمانا هنو ما اکثر خلو اکنون دا نهود ولاد تعریف کردند کشمه شما بی کشمه کسات کاری دوی در مکه دروس کردی دامادی دیگه مادینه حالا دویی دروس کردی دینه بود؟ اگر ایمان می آمد خانواده باش مخالف شوهر ایمان می آمد زن مخالفی زن ایمان می آورد شوهر مخالفی پارزان ایمان می آورد فکر مادر مخالف بود نه؟ لہذا ایمان را قرآن ایمان را موسیق موسیق قرآن اللہ کی اللہ و اللہ جواب الا تنبیه، دو رجوع، دو رجوع. این هم استوفا، بدون شک وشوفها می‌رسیم. بدون شک وشوفها، همین آموختن داره جایی که آنها طاری با جمله، جمله اسمیه دانها. خبرنا معرب دلان نکرد، فقط گفتا اِنَّا مَا با کلمه اِنَّا مَا حَد کرنا که ما این پکت اصلاح تونیم دار اللہ تعالیٰ جواب داد خبردار فاریس کرده یعنی شما موسیدی، شما دوی پیدا کردی شما به خاطر این ایمان حتی منابج ایسی خبرمی گفتا غر هاولای بینکم این ها دین فریف داده فریف خورتگان دینه این آمه خاتری کردن کردن کردن برای لباس روز که رو نه ی همه فارس کنن قرآن دوست الله الله تعالی دوست دوست دو دو این نه و بلا و همینها هستن مقصده در جیلی که خبره و ایمان میخوان هم زمان با هم هستن در یک زار که قلب باشد هم خبره جامیدن هم ایمان را جامیدن حالا که در یک زار یا خوپر باشد یا ایمان اصل خوپر و ایمان جام نمیشتا چرا ایمان شیع نفیب ہے و خوپر شیع نجیس ہے نفیب را با نجیس امرال قرآن شما این بیگی طبیعت قانون دنیا چیئے قانون طبیعت چیئے فاک و ناخوا کیت جاگران پاک اثر خود را بنا پاک نہیں لے یا ناپاک اثر خود را پاک نہیں دے لباس پاک رہا لباس شکی شما بھی پیچھے خود اثر میده حمیر گفتن دنیا مسلم نتیجه نتیجہ صاحب احس ارزل میشود یہ ہا گل ایک درختو چیز میخا ہم جواب دے پاک رہا و ناپاک رہا ولا مہانا ناپا ناپاک پاک رہا نتیش نکرد این سبیه که قانون دید چی چمکن ندارد ثابت پاک با ناپاک در یک سرک بره و اون پاک در یک پاک دمانه بین خاطر الله تعالی فرحود همین آئی که در یک در همی خواهن ایمان را بودارد و همی خواهن خوک ازاپر هست سجان نیده فاین شار ایمان هست کلا تجدو کاملی امینونه برالله و الیوم الاخری من عاد الله و رسیلو. هسین خاطر خدا فرمودن است که آن هم همه المفسدون ولی الله یشون. که و یعنی الله تعالی ثابت که هر بطالیم پیغمبر و بمتعلمین پیغمبر و خود پیغمبر سی معلمه کلمه بدی لا و یقین کنید کنید که را بو یہ حال نہیں تھا کہ انو ہی مقصد ہیں ہماکت منافقین نے اللہ تعالی بیان کیا وہ اذا تین انو مختبینہ گفتنی شود امنو ایمان بیا إيمان أولاً طور کہ امر ایمان مراد از مرد صحابہ ایمان مثل صحابہ بیا بخاطر ایمان رمضان کی جای کی دشمن ایمان کافر از ماهو ارتباط سلبر کرار کردی لبان تو صحابه بودن تیرها را داده ایمان من داده گفتا ایمان نیف که شما تظهار سکتونی الان در محضر پیغمبر نیم ساعت بعد در برابر دشمن پیغمبر نشتیل دو با او خمزون داری این دو رنگی درد نمیتونی گردوان و اردو می گرد و رنگی چھوڑو کار ایک رنگ ہو جام صلاح تر یا موم ہو جام منافد بی ایمان مثالش خمیره او خمینی شیصانت زلند این آر خمیره این خمیر را به هر شکلی که تغاضا باسه درگیارم رسورتی ساندهیجی درشنی آرم رسورتی بزرگش کنه کنه لیکن سن سن یا یا اگر سن هم کمیره کمیره به هر شکلی کیذار بیاید دار گه در هر شکلی نمیستند منافق بی ایمان مثل کمیره با کافر کافر با مومن مومن و این را خدا قبول نمی کنه هم خدا هم قبول نمی کنه مؤمنین را نمی پذیرد یا مؤمن واقعی با حقیقت همیشه در مقصد النبی و اکرای مسلمانان را بی جان نمی ومی گردن برای اون سردام دارانی هم قرآن صحابه آنمه گردن بابا ایمان درست بیاری آمینو کمان آمنا نا خیش آمینو کمان آمنا سبحا مسلمین حضر آم ایمان بیاری بخاطل ایمان با قوم خود اداوه با ذن خود اداوه با برادر خود اداوه نا ادومنو کمان آمنا سبحا دین صحابه را. کیمی ایمان صحابه بود و آنها بودند آن املو صحابه رسول الله که به ایمان همه چیز کرده بودند خودم محققی باعث انسان در کہ چیز خدا کرده بدا. و تقدای ایمان را تکمیل می این ما مرد سپاه، الله فرستاد کرد آنها، این‌هم هم سپاه، امّا جهانیان توجه را، معلم قرآن را نماینده خدارا خدا شاگردان رسول خدارا را احمد مگاد احمد خان یک در دنیا بناتان ولیکن لا يعلمون لیکن ها پہنے علمی نظارات انہا شعور نظارات کسیرات پیغمبر خدا تربیت و تشکیہ بکنا او از ہماکات او از بی اغلی او از بی دانشی پر سخاب دور میشود، شوار این خاص نبی نبیہ اینها ها هنوز علم که صحبت نبی درس نبی تذکیه نبی تربیت نبی تعلیم نبی این ها ات را از تمام ما کتاقات می کنند از سماعه جهالا کتاقات می کنند صحبت پیغمبر را اینها ها هنوز درد که متعلمین مکتب قرآن را و متعلمین استاد عظیم بشریت را احمق می امروز هر صحابه رسول اللہ را به هر حلبی تعالی زند چمد آیات قرآنی ہو احمد کریم پرده قرآن آگیز بلے شاگردان داراللوم زاہدان اکثریت مقبول یا تشدیجا انہائی که معدودا ما و انگوشکمارا حسن شاید پس تشدت طلبه با شد طلبه مردوده طلا اکثریت مقبولان دو یا تشدی در یک ماده، یا 5 تشدی در دو ماده. پس به عنوان تالیم بدهند. و اتیج پیغمبر به عنوان دچار نبود مقبول برسه. و این تالیم کامیابیه یا تالیم نکامیه. جس سے سان پیغمبر تعلیم دے وہ نتیجے تعلیم خامیاں پردرس چار شاگرد دار بیارے وہ طانہ و همان وہ ہم بوجھیں صحابہ پیغمبرین ہا طانہ بھی زدن گفتہ اللہ تعالی کو انا انہم هم مصطفا بلا کے لا یا ل دور لا یسعود ان کا بیماری پتا جسعود در علم ندارن اینها نمیدانند دانند چون ایمان ندارند تربیت را همکیش نیکنند شاگرد پیغمبر را سپاهی پیغمبر را مختدی پیغمبر را متقال تسکیه شده پیغمبر را احمق در حقیقت کمال بیعدبیت و در شار پیغمبر احالت است سکو پتیلا پیغمبر ترگیت بده دعا آنه باست باست یک مرشدی یک شخصیت تاریخی مسری بگر همراهان خوبی ندار برای اممد ہے یا نوی یک نظامی بر سربازانیم برای جنگ آموزش میدم میدم یادم میدم. ولی بگنی سربازها را خوب عالی ندارن. آموزش نظامی خوب نیست. نمیگیرم امتحان نمیگیرم از این سربازها کاموش میدم. اکثرها آره آموزش میدن. کدوم اکثر کامیابه که سربازها را آموزش نظامی خوب بدهند یا نه؟ یکی بگذار بخورند و بخوابن. اون افتر امو دشتران در بلنده هست میدان بیگران که وقتی اونها ای کبالاتر ازدن بیاند از سربازه ها امتحان اتیران بازی بیگران تاپ دازی بیگران در بیسیل آمان امره ها بیبین این سربازه ها شدد بلنده ازیم میشه سربازیه اون افسر اموالی یا نزمت مجید وقتی در سرواز ایک صلاحیت ببینن به بی صلاحیت اون آموزش دهنده پیغمبر هم تنها استاذ درس نه بود پیغمبر علیه السلام استاذ درس نظامی هم بود معلم نظامی هم بود معلم تمام بخش‌های زندگی پیغمبر و پیغمبر خامل ترین استاذ خانت ددن به صحابه در حقیقت خانه ای هست به تعلیم بحرمان خیلن بر اسلام این دانشگاه های دنیا حوزه های دینی کامیاب تین خودو خدومه شاگرده های مرکولی در امتحال دحای دستگاه سن پنزه شاگرد همه مردو اون محتمم اون مدارسین تقدیر می یا ایتا شرمندگی می کنن این خاطر سربران قرآن قرآن پرمود اینها داران پاکمانه دادن که صحابه محسدن صحابه احبا کر اینها بیت خالیم و حربار پیغمبر اسلام قانمی زنن و اللہ تعالیت دقا بی کنن که انا که کہ پانی میں افتغان ہے محفل فساد و صفاحت کی دلل مفسدی نے درچے کی کر دنیا ہوا ان کا حال تنچے کی کائنات لیکن ہا کاملا بے شور بے معرفت شور لگا احمدی خود را ترث نہیں کنا و مرہم و شما هم که بعد از هزار سال آمدی به خدا که بر صحابت فنقیش نکنند و صحابت را اید نکنند در خودشان فضالی فضالی فضالی و من میگنید اون از آیات خدا می گذرات که در محضر صحابه رسول الله است. او اعطا را تانه دادم به ابو بکر و عمر و عثمان و علی تانه دادم به طلحه و زوبه تانه دادم به اشره مبشرا تانه دادم به مهاجرین و انصار تانه دادم به سپاهیان اسلام این تانه به آموزش پیغمبر است به شور مداره که چی میگن کشی بیاد خمس فادردان مدرسه مرکی را از یک ردیب بگه نوزو بالله اینها بدن از نظر اخلاق بدن از نظر عمل بدن از نظر اعتقاد بدن اگه شما خودتان فکر کنین تانهی به شیخ الاسلام نیست که مدیره و مطهوله تانهی به تمام افاتفه مدرسه نیست صحابہ پیغمبر اسلام اس صحابہ چلن آمد از آخر آمدن اخر کار کہ اللہ تعالی شاهد رسالت پیغمبر صحابه رحمت کرد محمد رسول اللہ والذین معه اشدال القفا رحمهم بينهو تراهم ركعا سجدا يتبعون فضلا من الله بر سبحانه محمد رسول خدا است چرا اونها چباو مایا تاران در آموزشکاه پیغمبر صفحه نامه در صفاه پیغمبر صفحه نامه اورها شیطان القفار هستند با کفار دشمنان خدا و رسول الله ندارن شیطان باها هم کلاسی ها دوشن چطورن روح و بیلو بسیار رحمت و راقت دارن و با فرمون معاملی کنها با خدا دارن و بی معامله با با دشمنان خدا سخت و سج و با دوشان خدا بسیار رحمت دارن چیئتی میتواند در یک وجود هم شدت را تربیت کنن و هم رحمت را تربیت کنن میشه که بوشه ها خود را خود خود تربیت کنن بیر را خود تربیت کنن و میشه یک مرسیدی صوفی تربیت کنن صوفی صاحب قدر فکر بکنید اگر کتی کار نداشت مرسا این فقط مردم در دنیا که یک را هم شدید تربیت کرده و هم رحیم تربیت کرد ایراد پیغمدر کسی نمی توانا دربیت کنید پیش اصالی برای اسرما دو بقانا شما را صاحب ببار دیا رہا شمار خوب دلیر ببار رہا لیکن شما هم سوپی باشید تو هم دلیر باشید وہ پیغمدر پکر چانیم رحیم هم تعلیم دار شدید هم تعلیم دار رحمان تعلیم دار الشیطات هم دار لیکن این ها قدرت غذبیرہ در یک جا اعمال نمی بر دشمنان خدا قوت را شدت را اعمال می و بر دوستان خدا الله ولی واللجین آمنون بر دوستان خود اون قوت رحمت را اعمال می کردن سبحان الله این طایت جهت قوت دار. و همچنین مامل ایبا خدا ان حضارا تراهم رب جار سجده این رکوها و تائزهای تبیل و عیسی برای دیدن ایک پر پیغمبر ننی کنن برای این نمی که پیغمبر ما را محبوب قرار ده در این سجدها و رفتوهای طبیل و احلیت اینا ده خوست و مغام نداره جب تغون فضلا من الله و رسوله صالب رضای خدا حسکر صحابره اللہ پیغمبر خدا صالب رضای خدا حسکر اشخدت و حدد و همچنین ات رحمت انا صالب رضای خدا حسکر امتنی معروف یا یکی ایک کافر حتی <تصفح> رضی اللہ تعالی رو بزمین می زند او بر چهره مبارک احانت مکنه چرا؟ گفت افدتونه برای خدا می و الان نفس من نشید من دور برای خلم جنند من می و من برای خلم کلا از الان معلومی شد که رسمت نفس که من کیه در چینین دنیا چینین سروازی تربیت کنه که دشمن مغلوم را میگه چین سرح نفسی من میشه تو را دفا کرد کیه در دنیا چینین سروازی میشنگه این شاده که پیغمبر است صلی اللہ علیه وسلم بعد از این مقدمات و تمهید این ها تفتیلان در قرآن کردن برای اهانت، برای این کلاس قرآن را مختل کنند، اصلاد قرآن را نوذ بالله و متعلمین قرآن را احمد و جهان موارفی کنن و در این کلاس موارفتیم در این کلاس ایچ پیزی نید ترجمه تحت اللہ چیمی کردو نا تفسیری حوالا و نا زگد سدلالی در حال برای اینکه این خلاص را در دنیا معرفی کنم آمدن ما در کلات محمدی ایچ خیلی نه اخلاق نه نیست ما ربین ایک مشکرهی بکنم اللہ و تعالی میگه شبرا مشکره آمدیست خدا هم شبرا مشکره بکنم شبرا در کنار جنت در را میگن دستر این مستره رو با شما برکیم شما به دربار نبی آمدی بدون ایمان و از دربار نبی هم بدون ایمان ردی سبحان اللہ چقدر محرومیت اللہ تعالی میگه با خفر وارد شدن در محطه شما در مجلس فرقیل شما در مجلسه که همه علم و همه معرفت بود و همه للهیت بود بدونه حاضر کردن یک ذره وقت خرجو به کفره دخلو و خرجو در خلاص درس پیغمبر در مجلس پرپرید پیغمبر آمدن خبر لادا هم لادا سر رب من هم کافر بودن اللہ سبحان و تعالی پناه بگنن چرا؟ انها ما آمدن که از این مجلس علم بگیرن آمدن که این مجلس را به دنیا بد معرفی کنن ويجتمع خري بمعلم القرآن ومتعلم القرآن بقل ويذا نقول الذين امنوا قالوا امننا اعطينا ملغاث يكونا ومؤمنين الدنيا اعطينا ملغاث يكونا مهاجرين وانصار بعضا مننا امننا مامنی ماموسلمانی مامنی مامٹبدا به بناید مامن نامن مامو منی ماموسلمانی محمد Kangol داری محمد سنگرم dureck محمد افترم با ابو دا می اللہ تعالیٰ فرمود شرومیت صحابہ خبفار آتش کسیدنی یا نا لگر از محبت ابوبکر گلد کی باق رسول اللہ داشت از اطاعت امر کی با رسول اللہ داشت وقت کی صوبت بایدنی این آمد ملابات مکنون رکی مناوردن از مغادرین و از انصار بگا آمندن و اگر خلاورتی از مجلس پیغمبر جدا میشن و میرم به طرف شیاطین خود خلا و ذهبو چون خلا یا رجعو این فیلی متسمبل رجعو و را در بردار تسمون فیلی دیگر ندارد. دارد حقیقت مجلس پیغمبر جدا میشن و بر به طرف رؤتها شیاطین. مراد از این شیاطین احبار و رهبان یهود بزرگ یهودن و سعان یهودن اللہ تعالی مرد شیطان مدین خدا اند آگا ایتون حق پیغمبر و برمی گردم الى بطرف شیطان های تو. یعنی ایلان من احبار یهود و ربوس المسلکی و المنافقی بدلت رئیستان و اونها محنوز ربی صحابی شدی شمحمد ربی قالو میگه ما اکم ناما باسمائی حسنینی حال و باسمائی خوب در اون مختب قرآن اینا ما آنه با مستحفی کردن مولیم را باستر ایجو کنید ماشا مرسل لی خدای اللہ ویشتر روشن دلی ماشا ماشا اللہ ماشا اللہ مخصر قرآن خدا دارد و تذکرین خیلی خوکنید مامو سامی ایسا بیرم کنید چند باکت دیگر پیشت کردیم نتونیدیم میاییم ویشتر بیرمو ماشا خدا خود حدیثات مکتن بیرین که شکنی پیغمبر وقت ما میگیم آمن نا کانا له اربا آئی. تو آئید دل حدیث آمدنی حدیثات مکتن بیرین نزیان بیگیم محضرتن ایمان ایمان آرابی شهار چشم در روست میشه این در بول که وحکی کسی خوشحال میشه تو چشمش روشن ایم اللہ تعالی میگی نا در مقصب قرآن برای اسلام نamad. ادبا برای شما سو آمد. کسی که در کلاس قران برای این بیا که ولی من رفتم در این کلاس هیچ خیری نمون. این خیر. من شورایتی هیچ من در این کلاس ندیدم. هیچ فایده من در این کلاس. فایده این دیگه صدقا عاشق و قرآن رایم باقبارک میزیدن از در فرق قبلی که در این کلاس نیچ خیلی دیست هیچی نمستره این ریان دیست غیر الله غیر باش خدا نجات دید اللہ این مناز اینو برای این کشاگردان نام شده قرآن را منحره ای دانی شدن که اول روز آمین، اول نهار و آخر آن لعنت هم یاریم. ای خاتون هدف اگر اینها را کرده، معلمی کرده، مطالعه‌ای بین خاطر الله تعالی نیکه اینها نه آمدن که فیض قرآن بگیرن، اینها آمدن که مسخره کنن، جزای مسخره خدا به اینها میده. الله یا استهزو بهیم، الله تعالی مسخر میکنه دانه ها. خدا که از تماسخر گرفتن کسی را خلاف حقیقت گفتان، خدا که باکس، چطور الله تعالی یا استهزو بهیم؟ اینه تقصیر کردی که غوخ تقلیت می آنها آن در همین گمراهی در حال که آن خود دلی شنکوره و نتیجتا مفصل نویشت کردند یعنی اینها آن پیغمبر را احانت می و اینها آراد را و متعلقی قرآن را احانت می خود قرآن را احانت می کنند اللہ تعالی بیمان نان می ده بیمان آب میده، ده بیمان شیعت می ده. جارت که هر روز افزول میکنه خب میخورند تو میگردند و مغلول میشن و حتی می لا لالایو عذبون الله به معنی بود اگر این پیغمبر میگون وقتی ما این رو کردیم خدا ما چرا عذاب نکنیم اللہ تعالی گو من این هارم میکنم چند سبایی بهش خدمت میکنم میدم بعد زیر گردان مثل اینه یک انسانی دشمن خود را میبره خباب بید برای حضرت مولانا خباب بکنی آشما استادی بیمان می شما دیگی آره. دی. شما دیجی. شما استادی شما برای و این مگر اصطاق چیشم دارتا ہم دست استاذ وقتی، چشم استاذ وقتی، استاذ وقتی، چی؟ استاذ, استاذ. تعالی این این حال را مذکره نیکنه مثل اینی که که دشمن سراعت تو تا نمازه اچ در یک باغ پرد نعمه داخل کنه بهش کباب بده، بهش فرنج بده سختی و موبیلی برایش پهن کنه و بگذاره او همین که شد پایش ببنده این سخت این همه او غروب هر دو پایش ببنده این و این هیبا کفار و منافقین الله تعالا همین کار میکنه چند سباییش میده و میده بعد شنگت میذنین از تو جهنم کباب میکنند تو شیخای جهنم اینها کباب میشن تو یه استهزار شدیم الله تعالا دزای استهزار به اینها میده بعدیم ما نکردیم یا سرزوییم ای یا چی با استهزارشون یا چیهم با استهزارشون یا تفسیری یم یعنی الله تعالی امداد کمک میکنه دینه ها را در همون سرکشی و تغییری که دارن در حالی که دلشون کوره یا مهون دلش کور شده است کور دل شده ام از قبلی الله ماند شده دل اینها کوره دل هیچ دلشون بی نهاد ندارن حالا ای که لذی نشتره و دلادی نه دانه خودشانی کتداره تو بیگریت هم نقصد همه دکان اسلام بکره همه دکان کفر بکره هر خدا دکان رو نقش بیشتره در همون دوکان بره اللہ تعالی میگه انها تجارت سوزمندی لکردن فردا نقاض انها ظاهر میشه و انها انجا فرجا ختم میشه قلائک الَّذی مَشْتَرَوُدْ دَلَانَةَ بِالْحُدَى انها اختیار کردن ضرارت و گمرائی را در برابر هدایت حردید آدن اختیار کردن لہذا تجارت خوبی بھی نہ کردیں ہمارے تجارت ہوں سودی نہ دست تجارت انھا چرا وما كانوا مؤتدي الناس از اول راہ تجارت را بلاک نہ بودا راہ تجارت یا کافر مخلص باہر بلا کافر ہمرا باشی یا مومن مخلص درنگی تصور کرے رنگ ہوتا ہیں ان حد درنگی کردتا حالا نفات انها هم تاہید شد و کفار هم از بین رفتن انها تاریک پلاندن بین خاطر اللہ فعلت تو مثال سخت میگن جنگور میگن هم مثال اول مثل همکا مثل اللی سوکد نارا و هم قوکت سییبین این مثال مثال منافقین ہے لیکن مولانا حسین علی صاحب میگید مثال اول مال کفار مثال دوم او کستاییوی مال مرافقی نید مثال قاقرها مثل ان انسان آئی هست کہ ان انسان آئی ایک آتشی روشن نید کنن تاریخی ان آتش خوب اطراف قدر روشن نید کنن تا فاطلہای غمی بیرن لگن در این روشن آئی آتش آنها فکر تاریکی را نمی که کنن انتظام کنند راحت قواب خود را فهم کنن حرف خدمت شما ببینن را را تا تجای چان و چانا را نگا این وقت آتش روشن بی خیال مشستن حالا یک نم آتش این هارا بعد سنگینی و تلپانی از بین میبره حالا اینا تو تاریم کیه نراز میبینند و نچا و حسرت چیزی این کفار مثالشون دوون انسانها ترشیه که در روشنایی آتش اونها به کره تاریکی را نکرده حالا ماندن تو تاریکی نشاط نرات میدن نشاط اینها کر و گنگل همانطور که قرآن میگه که اینها سوم و بخون عمیون و هملاه یاریون اینها سکوت به طوری ایمان دارن نکرده مولانا میگه این مثال ما کفار هست. من به طریق مولانا معنیش می حالت عجیبه مثل به معنی حالت عجیبه حالت عجیبه این خفال مثل اون کسی هست که آتش روشن می کنند اینجا اندماد ودنانگا مرده های اون مردها ها استفاده از روشنائی آتش نمیکنند. روشن است قدم اصطوقده به معنی اصطوقده هستین برای طلب نیست هست وقتی کی این آتش روشن نیکنه ماهو له اطراف خود را یعنی فواید دسمانیه مالیه حاصل میشه تو ذهب اللہ به نوره میبرد محرومی از فواید و ظهور نفات میبرد اللہ تعالی نور آنها را و میبرد آنها را در فاریکی ها که اصلا نمی بینن آنها اطراف خود را نق و نقصان خود را نمی بینن هم این مبتدا هست اینها کرند اینها گنگرند اینها کورند پس از خوب که دارن به طرف ایمان بر نمیگردن این مثال کوبار هست اون انسان های که آتش روشن می کنن شدن. آتش میکنن و از هر کسانی ليششتن باید از روشنایی ناتش استفاده میکردن از روشنایی آتش این شهستگان دورو بر آتش استفاده نکرده آتش را خدا بورده حالا اینه تو تاریم که از کبار بینی همینطور بیدن شمع نبوت و رسالت روشنائی می در مکه و در حول حوش مکه به از این آتش استفاده کردن از این نور استفاده کردن بعد اللہ تعالیٰ این را از نکه و مدینه مرتقل کرد انا اینا تو تحریکی محس باریم مثال این همون سلحبان آتا شکرد بس منعات جمعور اینجا نگه این دماغ نیست بس الَّذین توقت بمعنی الَّذین الَّذین اللذی بمعنی الَّذین بدلیل اینکه زمیر ترکهم بنورهم لا یوبسرن به ترکوبار میگن. ورنه زمان مرزی ندارد. جمهور میگه حالت عذباین کفار مثل آن کسانی هست که آتش روشن کرد لطفاً آن لذی مفرد معنای آن لذی رمیل. و در کرانت مجد جایی که جا هم آن لذی مفرد معنای آن لذی آن لذی امامت است. خودم کلذی خود. خود تو کاللدی خوادو اونجا کاللدی به معنی الَّذِينَ خوادوه مفرد، جمع ای مثال این کفار مثل اون انسان هایتنگ آتش روشن کرد وقتی آتش اطراف خود رو روشن کرد یعنی رسانی باز خدا آتش و در فاریکی مانده کوفر بین ہیں ہم او کثای یہ ہیں ان مثال طریق صالحہ مثالو و مثلاہ یہاں ہے مثل ایک باران شدید مثل باران شدید ان کا موصاف مقدرہ مثال این منافقین مثل اون انسان آئی حد تن که در یک باران شدید قرار داره انسانی در یک باران شدید قرار داره تاریکی قطرات باران هم خوشکسر هم تنمی آئین شب هم هست سایه اگر هم هست تاریکی بالای تاریکی لیکن گاغای برگ میزنه چی میزنه این برگ وقتی میزنه تو پاسلے دیویس میں انسان برایش مسیر مشخصه که چالهی، چولهی، کوهی، درختی جلوی همه، مثلا نکرد تا این تا شاید مسیر خاملاً برای انسان مشخص بشه خب زیاد نیست. دولانی خب وقت بشه، یک انسان آغل مسیر خود را تا دام او تحمیل میزنه و توی تاریکی هنمی با وقتی پرغمی داره پنجه نیتی متراتر نتیب برای خودش نشاکرسه خب آخرین انسان یک پناده جایی یک انسانی که در این باران شدید قرار فقط موقع برغ گام برمی دارد وقت تاریکی می ادمی استه ایک کشان نیسته بلکه چولانی نیتی ای بجائی نیتی این منافق خواب سبحان اللہ قرآن اعتیم و و تعالیم و هر اخبار پیغمبر باران باران خب توی این باران راد هم صدای محیب را همون صدای محیب رمیدن برکشم هست انسان اگر کسی مباران قرار گرفتے باید وقت صدارت شنید دست آر دردوش قرار دید و چشم آر ببند دید یا دوشه آره باز کنه تا را تا شدار را بده و چشمه آره باز را کنه تا مسیر خود را مشخص کنه لیکن این انسانی که در این باران شدید قرار گرفته و در آن راد هم هست و برق هم هست او دسته آره در دوش خود خوب بشار داده من و. و آره هم که دار دار من خدا راد و چشمه هم راسته که برق بر چشمهای من در وارد نکنه. این انسان کجا میخواهد درسته وقت در روشنایی گان حرکت می کنه وقت تاریخ شدتر جا این انسان بھیجایی نمی دسته پس این تعالیم پیغمبر نصالش یک باران هست باران بسیارش حدید خب توی این باران راگ هست وعید بر کفر و نفات هست که اگر دست کفر نکشیدی چنان و چنین می کنه؟ دست از نفات مکشیمی حاک و در این اسلام نبید هست ایمان آوردی بهشت میدم در دنیا نمد میدم عزت میدم این نبید هست این ها برک هست لیکن نبیده ها در درابل وعیده ها خمسر هست این منافقات مثل اون شاهب داران اگه شیرینی میبینن که خیبر فتح هست نانو که گیر می آیا دیسکویدی حاضر ماشمومی هم به نمبر و اگر جایی که خطرات هست به مکه می رین و در مکه خطرات هست این هم می ایستن این خاطر اللہ تعالی می گه این هایی که در روشتنایی وقت می کنن حرکت کنن و در شدارت و مشکلات اسلام را ویل می کنن این ها به بسرد نیستن باید این صاحبان باران هم در روشنائی راحت دیرند و مشکلات وقتی اسلام نعمت دارد صحت و سلامتی و امنیت دارد دار اگر دروشنگی و ناراحتی و اصارت و مشکلات دارد هم این حشان را دیر این مشکلات را تکمول کنند ان تاکب روز روز اللہ تعالی میگه مثال این که مثل اون صاحبان بارانی که دویست تجیب نجد تو کتاب نوشته تو قرآن میگی دهام مثل صاحب یک بارانی هستن که باران از آسمان میاد یعنی این قرآن تشبیه داده شده به یک باران که از آسمان میاد یا رضیانه از عبدها باران میاد در این عبدها در این باران یا در این سماء چن لبز سماء مذکرم ولنه اسم جنسی از لب ظلمات هست در این باران تاریکی ها هست اون تاریک ها تاریخ شده از, بی... از بیان کفرشی وراد هست وعیده غرشه رشه ای الهی برای عذاب الدنیا و آخرت اینها وعیده اینها فعاده و بلکه اون های و براییل الهیه استدلالاتی که خدا می برای هدایت بشر و اونهایی که انابت میکنن اینها برکن این صاحبان باران قرار می دن اصحابه خود و در بوشه خود از پرس سائکه سواید سائکه ها اون پردی از در غراب میشه در بلوچی نفتش می ده. چرا قرار میده ده حضر از ترس مرد؟ اللہ کن آیاست از عذاب خدای حاطر کرده کافرها راست یعنی اینهایی که از روشنائی استفاده نمی کنن از تاریکی استفاده نمی کنن اینها غرشنها را نشنوان دستاره در بش کردن اینها باید بش را باز می کردن تا صدای راد و برد را میدادن می دادن و امطلب حدایت ارکت می کردن که روشنائی اللہ اینها را احاطه کرده کافرین را چنایه از عذاب هست یک آدون برد براهینی که خدا در قرآن برای مومن بیان کرده در دنیا و آخرت اون برد خیلی جدیلی نزدید است که این دلائل چشمها اینها را ببرند یعنی این براهین قاطعه برای ترکیه بشن در قرآن بیان شده تشبید آده شده برد خیلی سرکت دارد لیکن آج چشم آنمی کن در برای حیث نگاه نمی کن ندی که که ببر چشم آنم هر زمانی که روشنی می دهد برای آنها به دور موجودات یا حطول مال خمسو کیهی در این روشنائی کام می دارا اتو شمع می دانید روشنائی کمه روشنائی ایک موردیه ده موردی دیگر تاریکیه اللہ تعالی می گید این هم میران کنما اضاعنا تو ما شو بیهی برک برای آنها روشنی میده ها دین هم میردیون و روشنائی و ایزا اظلم آلیهن وقت تاریکی میعید یا لبرود شدائید و تقالیب میشه تو اطابون های سمیده اگه اقلام شیرنی دارا حاضرم بیان خیبر مثلا شیرنی دارست و ما حاضرین بیان در جمحه خیبر لیکن جمحه امت مکم کررمه او جمحه خیلی مشکلات داشت خطر مرد نوازو نو تر سردی جان رات این خاطر اللہ تعالی کامیاب نہیں بعد انسان در تاریکی و در زمان در اسلام تاریکی آمد تاری در در تاریکی الله تعالی مذمت می‌شنوه عقل اینه که در روشنایی فکر تاریکی رحم بکنه و در تاریکی هم به طاب روشنایی ابدی برسد كل معذالهم مشوكی و ایذا اغلم علیهم قال اكر الله تعالی میگه این منافقین سر و سرایت را از دست اگر الان توبه کنم تو خدا بهش هدایت بده اگر خدا میخواد میبرد دوش آنها را یعنی صلاحیت دوش آنها را و تلاشش ما آنها را. چرا که الله بر هر شی خدیره که بخواد هر شی ممکن خدا قادره. هر شی مهاره محال و خود کمهاره. مهار محال همون میگن که بودنش مهار باشد و نبودنش ضروری باشد. این یک اشکال اونو من میکنم میگم خدا بر هر شی قادره پل. الله برای میتونه ضعیف بشه آدم که نتواند اونو بلند کنه. سنگی خلق کنه که بعد نتونه او را بلند کنه یکی از تعدیل های مشکیل و کفار و مدوسهات و همسی از کمونیست ها سرولان گرامی ساخنه اون سنگ خدا او را خلق کردن اون محاله مثل شریک باریتا محال میگن که نبودنش لاتنی باشد گودنش محاله وجودش محاله محال محال نبودنش لازمی باشا چرا؟ یا ادبائی که حدا از ممکناتا یا از, از, از ممتنعاتا از یا بادو الله ذاتش واجب الوجود ہے چی ما سوا حدا ممکن الوجود ہے و اونها از ممکناتا شریک باری تعالیٰ از ممتنعاتا اون زنگ خدا را نکنے بلند کنے اون هم از ممتنعاتا این آتا چالحات پر کبک اِنَّ, وَاللَّهُ ان الله على كل شيء ان الله على كل شيء قدير ادراسي فجواب الشمطاء دي هر شيء ممكن الله تعالى قادر شيء كمان تمام محال محال معنا شيء نہیں کی نہ پای تم ہے دعوانا الحمد لله رب العالمين